هزار اخسان به نام خدای یگانی مهربان سلام ها و افسانهها از نخستین زاده های تب و ذوق بشر و قدیمیترین سند زندگی و تفکر و دگرگونی های حیات آدمیانند و گفته شده که عمر و قدمت افسانهها با عمر آدمی بر این کره خاکی برابره آدمی از روزگاری که خودش خودشو شناخته قصه و افسانه گفته و شنیده و اونها رو دهان به دهان نقل کرده تا به امروز رسیده افسانه ها دوام و بقای شگفت و مرموز دارن این هفته افسانی از مردمان ترکمن رو براتون نرم می به نام افسانه چگونه اوول خان رو در بازی برد این افسانه برگرفته از کتاب افثانه های مردم دنیا، ترجمه عبدالرحمن دیجی، محمد غصا و فتولاه دیدبان. در زمانهای قدیم پیرمردی مردی زندگی میکرد که پسری داشت به نام اوول. بعد از سالها پیرمرد از دنیا رفت و برای تنها پسرش یعنی اوول، سی گوسفند، سی گاو و سی اسب بهجا گذاشت اوول بعد از مرگ پدرش با خودش فکر کرد این حیواناتو چیکار کنم؟ و بالاخره تصمیم گرفت اونا رو در راه کسب علم و دانش صرف کنه و بنابراین با حیواناتش به طرف شمال به راه افتاد اوول بعد از چند ساعت به چادرهایی رسید توی چادر اول چند نفر نشسته بودند و چطرنج بازی میکرد. اوول چند دقیقه ایستاد و به بازی اونا نگاه کرد و با دقت حرکات دست مردها رو دنبال کرد این بازی براش جالب بود. بنابراین جلوتر رفت. یکی از مردها با دیدن اوول از بازی دست کشید و پرسید تو کی هستی؟ از کجا میای؟ چی میخوای؟ اوول جواب داد من اوویل هستم. از جنوب میام. چند وقتی پیش پدرمو از دست دادم و اون برام حیوانات زیادی به ارس من... من میخوام این حیونات رو در راه کسب علم و دانش صرف کنم مرد شطرنج باز پرسید خب حالا از من چی میخوای؟ اوول به تندی جواب داد من من از شما میخوام بازی شترنج رو به من یاد بدین در عوض منم سی گوسفندم رو به شما میدم بعد مکسی کرد و گفت قبوله؟ به من یاد میدین؟ مردهای شطرنج باز در عرض چند ماه تمام فوت و فن بازی شترنج رو به اول یاد دادن به طوری که اول چنان در بازی شطرنج ماهر شد که حتی استادانش رو هم در بازی شکست می داد اوویل همونطوری که قول داده بود سی گوسفند به مردهای شطرنج باز داد و به همراه بقیه حیواناتش یعنی سی اسب و سی گاو به راه افتاد موسیقی موسیقی اوویل رفت و رفت و رفت تا به چادر سفیدی رسید در اونجا سه نفر نشسته بودند و در حال تردستی بودند اوول ایستاد و به تردستی های اونا با دقت خیره شد مرد های تردست چشمندیایی رو که برات بودن به هم نشون میدادن اوول از این کار خوشش اومد بنابراین این جلوتر رفت و گفت اه، ببخشید اه، ببخشید آقایون من نگاه مردها به طرف اوول کشیده شد و کلام خودشونو رد کردند. اونا با تعجب نگاهی به اوویل انداختن و ازش پرسیدن تو چی هستی؟ از کجا آمدی؟ از ما چی میخوای ول جواب داد من از جنوب اومدم و از پدرم حیوانات زیادی برام به عرص مونده. یکی از مردا حرف اونو قطع کرد و گفت خب ارث تو به ما چه ربطی داره؟ اوول بتوندی جواب داد من من حاضرم بخشی از ارسم رو به شما بدم و در عوض شما شما مرد باز هم كلام اوول رو قطع کرد و پرسید ما چی؟ چیکار باید بکنیم ها؟ اوول گفت شما شما هم تموم اون چشمبندیایی رو که بلدین به من یاد بدین حاضرین؟ مرد ها نگاهی به هم انداختن و بعد از مشهرت کوتاهی بالاخره قبول کردن که تمام چشپندیی رو که برادن به او یاد بدن خلاصه دو ماه گذشت و او تمام تمام ها و چشپندیی رو یاد گرفت و سی گاو و به مردها داد و با سی اسبی که براش باقی مونده بود به طرف شمال به افتاد اوول رفت و رفت تا به چادر دیگه ای رسید در اونجا هم چند نفر نشسته بودن و مسئله ریاضی حل میکردن اوول به اونها نزدیک شد و برای اونا تعریف کرد که سی گوزفند و سی و در عوض یادگیری علم داده حالا هم شطرنج بازی میدونه و هم چشپندی عجیب و غریب بعد به مردها گفت اگه،, اگه شما به من علم حساب یاد بدین؟ من در عوض بیست و نه رأس به شما میدم، حاضرین؟ مردو کمی فکر کردن، و بالاخره پذیرفتن که علم حساب رو به اول یاد بدن، سه ماه گذشت، اول حتی بهتر از استادای خودش تمرین های حساب رو حل میکرد. کرد، سوار بر تنها عصب شد و افتاد، وَل توی راه از مردم شنید که مرد حق بازی به نام کاراتی خان پشت تپه ها زندگی میکنه کاراتی خان با هر کسی که از سرزمینش میگذره شطرنج بازی میکنه اگه خان بازی شطرنجو ببره خان اونو چوپون خودش میکنه و اگه خان بازی شطرنجو ببازه تمام گوسفنداشو به شخص برنده شطرنج میده اما تا به حال کسی نتونسته بود توی بازی شطرنج خان و شکست بده و از این رو خان چوپونای زیادی داشت اوول که این حرفو رو از مردم شنید تصمیم گرفت کاراتی خان و به مسابقه شطرنج دعوت کنه بنابراین به راه افتاد از تپهها گذشت و به دشت بزرگی رسید از اونجا گوسفندای کاراتی خان و دید و اونا رو دونه به دونه شمرد بعد تعداد چپونه ها رو هم حساب کرد. 99 نفر بودن. اوول با خودش گفت خب اگه من بازی شترنجو از خان ببرم همه این چوپونا رو آزاد میکنم. اونا نباید از دست کاراتی خان باشن. اوول، به چادر خان رفت و به یکی از نوکران خان گفت من اوول هستم اومدم با خان شطرنج بازی کنم نوکر خان فورا خبر ورود اوول به خان داد و خان اعلام آمادگی کرد اوول وارد چادر مخصوص خان شد و گفت من از پشت کوه اومدم میخوام با شما مسابقه شطرنج بدم تا شاید بتونم گوستنده و چپونهای شما رو توی این بازی به دست بیارم کاراتی خان از این حرف اوول خندش گرفت و پوست خند زنان گفت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تو اومدی منو تو بازی <تصفيق> <تصح> شطرن شکست و و بعد قاه قاه خندید و بعد گفت بگو ببینم وقتی به سرزمین من اومدی چی دیدی ها؟ اوول جواب داد گوسفندا و چپونای شما رو دیدم خان گفت بهتر اول تمام گوسفندا و چپونای من رو بعد با هم مسابقه بدیم اوول به تندی گفت من قبلا اونا رو شمردم دونه بدونه خان با تحجو پرسید اونا رو شمردی او جواب داد بله بله شما و نه نفر چوپون دارید اگه شما در این بازی چترنج منو شکست بدین تعداد چوپون شما به صد نفر میرسه یعنی من هم به اونها اضافه میشم ولی من شما رو شکست بدم همه یه رو آزاد میکنم خان تعجب کرد که این جوون ساده شمردن برده. خلاصه بازی شطرنج شروع شد. بازی شطرنج به نیمه رسیده بود که کاراتی خان متوجه شد چیزی به شکستش تو بازی نمونده این بود که گفت صبر کن صبر کن بازی شطرنج طولانی و خسته کننده است بیا یک کمی غذا و آب بخوریم و یه مقداریم استراحت کنیم بعد با انرژی بیشتری بازیمون ادامه میدیم در این موقع همسر خان توی دو بوشخاب تلایی برای خان اول قضا آورد اول با هوشیاری متوجه شد که غذایی که جلوی خان گذاشتن عقل و زیاد و انسان هوشیار میکنه اما غذایی که جلوی اون گذاشتن و از بین میبره و چشمها رو تیره و تار میکنه بنابراین اول که تر دست ماهری بود در یه چشم هم زدن جای ها رو با هم عوض کرد خان بازی اول رو باخت اوول با خوشحالی گفت خب دفعه اول رو من بردم دو دفعه دیگه مونده خان با عصبانیت نگاهی به اوول انداخت و بعد هر دوتاشون به بازی شطرنج ادامه دادم چیزی نمونده بود که اوول بازی دوم رو هم ببره که باز در این موقع خان فریاد زد ای قضا قضا غذا بیارید تا نیرو بگیریم زود باشین غذا این بار هم همسر خان با اجل غذا رو توی دو بشخاب ترایی جوری اونا گذاشت این بار هم اوول از فن تردسی خودش استفاده کرد و توی یه چشم هم زدن جای بشخواب ها رو با هم عوض کرد با تموم شدن غذا چشم های خان خابالوچ شد. دیگه نمیتونست درست ببینه و خوب فکر کنه و بالاخره هم بازی دوم دومو باخت اوول گفت خان این آخرین بازیه خان در حالی که حسابی ترسیده بود به اوول نگاه کرد اونها آخرین مرحله شطرنجو ادامه دادن بعد از چند حرکت کاراتیخان فهمید که بله در این مرحلی آخر هم در شکست میخوره. کم کم چشاش تار شد، مهره هاگ شترنج در مقابل چشاش به رقص در اومدن و تکون تکون می خوردن و به چپ و راست می رفتن. بالاخره او اویل تونست بعد سرکت خانو توی بازی شطرنج شکست بده، خان اگرچه براش سخت بود که همهٔ گوسفندا و چپوناشو به اول بده ولی به ناچار این کارو کرد و گفت هر چیزی که دارم مال تو تو تو صاحب همهٔ هستی اوول گفت من ثروت و مال نمیخوام فقط دوست دارم چوپونای تو رو آزاد کنم خان هم چوپونای خودش رو آزاد کرد و اوول به هر کدوم جلی گوسن بخشید و خودش هم سوار اسبش شد و سرزمین کاراتی خان دور شد افسانه ترکمنی چگونه اوول خان رو در بازی برد براتون نقل کردم امیدوارم از شنیدن این افسانه زیبا لذت برده باشید افسانه و قصه مثل خواب دیدنه با زندگی پیوند داره و به اون شبیهه و شنیدن اون در همه دوره های عمر آدمی از کودکی تا پیری برای ما جالب و لذت بخشه هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت سالپور، ویراستار صهیلا کریمی، اجرا مهران دوستی، سرگردار هدیه سعیفی کار. چایه کننده زهرا بدالله زاده تا افسانه دیگر بدر.